داستان‌های افسانه‌ای صوتی به مدیریت آقای محمد جواد بوستانی خانش توسط بنفشه این داستان شاهزاده ای که سرنوشت خودش را تغییر داد. کمار جوان و مادرش در احماق یک جنگل بزرگ زندگی می کردند. هیچ خونه ای تا چند کیلومتری خونه ای اونا وجود نداشت. هر وقت کمار به دوردست چشم میداخت، فقط و فقط ردیف درختان بلوط، شاه بلوط، نارون و راش رو میتونست ببینه. و تنها صداهایی رو که میشنید، صدای شرشور نهرها و فریاد حیوونا و جیکچیک پرنده ها بود. کمار بعد از ظهرها در جاهای مختلف جنگل تور پهن می کرد و صبح روز بعد آهوی زیبایی در یکی از تورهای او به دام میافتاد. بعد هر دو یا سه روزی بار تاجری از راه می اومد و آهو رو میبرد و در عوض بهشون غذا و لباس میداد. گاهی هم تاجر برای کمار، کتاب از برگ نخل می آورد تا او بخونه گاهگاهی تعدادی پسر جوون هم سه سال کمار از دهکده‌های اطراف برای جمعوری میوه ریشه درخت و پر تاووس به جنگل می اومدن. اونا کمار رو دوست داشتن روزی به کمار گفتن ما می هر روز پیشت باشیم اما برامون سخته که هر روز به جنگل بیایم، چون باید یه راه طولانی رو تا اینجا تایی کنیم چرا شما به دهکده نمیایین و در چنین گوشه پرت و دور افتاده ای زندگی میکنید وقتی دوستان کمار رفتن او به سرعت خودش رو به خونه رسوند و به مادرش گفت مادر جان مگه ما مجبوریم توی چنین جنگل تاریکی زندگی کنیم همه دوستای من نزدیک هم زندگی میکنن چرا ما نمیرین باهاشون زندگی کنیم مادرش پاسخی نداد کمار بارها سوال خودش رو تکرار کرد و ناچار مادرش گفت ما مجبوریم برای همیشه توی این جنگل زندگی کنیم زندگی بین جمع برای ما امن نیست بیشتر از اینم نمیتونم چیزی بگم کمار با التماس گفت مادر شما باید همه چیز رو برای من بگید مادرش جواب داد نه پسرم اگه بیشتر بشنوی ممکنه ناراحت بشی کمار محکم گفت هرگز قول میدم همینطور شد و سر حال باقی بمونم. مادر کمار باز ساکت شد. اشک روی گونه هاش غلطیدداد. کمار آروم گفت: « مادرجان اگه این موضوع تو رو آزار میده نیازی نیست چیزی به من بگی." مادر جواب داد: «نه شاید وقتش رسیده که تو همه چیزو بدونی. شاید اینطوری بیشتر مراقب خودت باشی. مادر با گفتن این کلمات شروع به گفتن زندگی خودش کرد و گفت ما از وقتی تو یه سال داشتی توی این جنگل زندگی میکنیم طبیعیه که تو ندونی ما قبلا کجا زندگی میکردیم اما حتما تعجب میکنی اگه بگم ما قبلا توی قصر بزرگ زندگی میکردیم چون پدر تو پادشاه این کشور بود و تو هم تنها فرزندش بودی و باید تاج و تختش بهت میرسید اما سرنوشت تو طور دیگه ای بود شبی که به دنیا اومدی تمام کاخ غرق در جشن و شادمانی بود من خیلی ضعیف شده بودم و به خواب عمیقی فرو رفته بودم نیمه شب بود که بیدار شدم و همه پرستارا و خدمه در خواب بودند من آروم چشمامو باز کردم و با تعجب تمام نوری رو دیرم که تمام اتاق رو پوشونده بود شنیده بودم وقتی بچه ای به دنیا میاد فرشته بخت تقدیر او رو مینویسه و بدون اینکه دیده بشه میاد اما لحظه های بسیار کمیابی هستن که میشه اونو دید فوری متوجه شدم که این نور کسی جز فرشته بخت تو نیست سریع بلند شدم و جلوش زانو زدم و با التماس ازش خواستم تا به من بگه که چه سرنوشتی در انتظارته؟ اما او از افشای سرنوشت تو خودداری کرد من اصرار کردم و گفتم اگه سرنوشت تو رو به من نگه اجازه نمیدم اتاق رو ترک کنه او هم به بناچار قبول کرد و گفت که سرنوشت تو اینه که در تمام عمرت مرد فقیری باقی بمونی این حرفش مثل سنگی بود که بر سر من کوبید. مدتی بعد شاه در یه حادثه فوت کرد نخست وزیر که خیلی قدرتمند بود سعی کرد هر دوی ما رو بکشه خوشبختانه من از نقشش مطلع شدم و چون برام جان تو بیشتر از سلطنت ارزش داشت شبانه همراه تو به جنگل فرار کردم حالا همون نخست وزیر شرور شاه شده و نمیدونه که ما اینجا زندگی میکنیم اگه پیدامون کنه حتما ما رو میکشه به خاطر همینه که من نمیخوام جنگل رو ترک کنم اون فرشته بخت به من اطمینان داد که تو فقیر میمونی اما هرگز گرسنه نمیمونی چون قرار گذاشته که هر شب آهوی زیبایی در یکی از دامهای تو اسیر بشه مدتها من تورها رو پهن میکردم و حالا این کار رو به تو محول کردم قلب من شکسته و هنوزم از اینکه تو باید از این راه زندگی کنی غمگین هستم کمار به داستان مادرش با دقت و اشتیاق گوش داد. بعد از چند لحظه فکر کردن، با اطمینان گفت: مادرجان جان، برام دردآوره که شما زمانی ملکه بودین و حالا مجبورین به این شکل توی این کلبه محقر زندگی کنید. من از این موضوع خیلی ناراحت شدم. قبلا از اینکه اینجا زندگی می کردم خیلی ناراحت نبودم. اما حالا که از گذشته خودم و از خیانت نخست وزیر باخبر شدم، دیگه نمیتونم آروم بمونم باید کاری کنم که قلم روی سلطنتی پدرم رو از وزیر خائن پس بگیرم مادرش پاسخ داد فرزندم این تقدیر توه و عوض نمیشه کمار با لحن قاطع و محکمی که میخواست او را آروم کنه گفت من باید این سرنوشت رو تغییر بدم کمار مدتی طولانی آروم توی گوشه به فکر فرو رفت ناگهان صورتش از خوشحالی برق زد و گفت مادر جان، آیا فرشته بخت من به تو اطمینان داد که من هر شب همونیه آهو رو میگیرم؟ مادرش جواب داد: بله. کمار گفت: خیلی خوب، پس این موضوع وسیله که من جنگ خودم رو با تقدیر و سرنوشتم شروع کنم. اون روز بعد از ظهر کمار به جای اینکه ده دام در جاهای مختلف جنگل بذاره، فقط پنج دام پهن کرد و در یکی از این پنج دام یه آهو گرفتار شد روز بعد فقط یه دام پهن کرد و صبح روز بعد یه آهو را در بند دید بعد از ظهر روز بعد به جای اینکه دام خودش رو در جاهای معمولی پهن کنه تور خودش رو بالای بام کلبه پهن کرد و صبح روز بعد یه آهو توی اون اسیر دید عصر روز بعد تور رو از شاخی درخت بلوت آویزون کرد اما صبح روز بعد بازم یه آهو درون تور بود بعد از ظهر بعدی کمار باز هم تور رو بالای درخت بلوت آویزون کرد اما دور درخت آتیش روشن کرد نیمه شب ناگهان کمار از خواب پرید کسی نزدیک رخت خواب او نفس نفس میزد. یه غریبه ای با نوری نیمه سوخته مقابل او ایستاده بود او فرشته بخت بود فرشته بخت با عصبانیت گفت منظورت چیه که طور خودت روی درخت آویزون می کنی و اطرافشم آتیش روشن می چرا دست به چنین این های میزنی؟ هایی کمار جواب داد من فتنه به پا کنم فقط میخوام جلوی شیطنت ها و های رو بگیرم میخوام سلطنتی رو که حق منه به دست بیارم فرشته بخت با اعتراض گفت اما سرنوشت برای تو چنین تقدیر شدی که همواره فقیر باقی بمونی کمار گفت خیلی خوب حالا که مقدر شده هر شب یه آهو در دام من بیفته منم دوست دارم هر جا دلم میخواد دام بذارم تو چطور جرعت میکنی در این مورد گله و شکایت کنی فرشته بخت با تلخی گفت چرا نمیفهمی؟ من موظفم یه آهو رو هر طور شده بذارم تو تور تو. حالا اگه قرار باشه من هر روز آهور رو بالای درخت ببرم و توی تور بندازم که از پا میافتم کمار با صدایی بی علاقه پاسخ داد. فردا میخوام خوام تور خودم و بذارم توی بلندترین درخت جنگل و اطرافشم آتیش به پا می کنم. نه فقط این؟ بلکه قصد دارم روی پوست درخت رو هم با روغن چرب کنم. فرشته تقدیر با ناامیدی نالید. ای طولانی به فکر فرو رفت. بعد خنده ای کرد و گفت: باشه. حالا که اینطوره من مجبورم تقدیر تو رو دوباره بنویسم. اون شب فرشته تقدیر سرنوشت قدیمی کمار رو از روی پیشونیش پاک کرد و دوباره سرنوشت او رو نوشت. چند روز بعد مردم قیام کردند و نخست وزیر را کشتن کمار به قصر رفت و خدمتکاران و پرستاران قدیمی او را شناختند. زودی خبر بازگشت کمار به گوش رسید و همه بهش رأی دادند و او با رأی مردم شاه شد. امیدوارم از شنیدن این داستان لذت برده باشید. سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها، عت های زیبا و نایاب رودخانه ها و برکه های جادویی قصرهای باشکوه و مهمانی های بزرگ شاهانه استههایی از سفرهای دور و دراز با پای پیاده،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 ادساین مهران دوستی